گرچه زخم میان پاهایش هنوز درد و سوزش داشت، گفت: به زودی ما در به شما هفت ماه رنج کشیدی، دو سه روز دیگر هم بردباری کن. وقتی پا شدند، وزیر آسمان ابری سیاه به سوی پله های ایستگاه ماشین دودی آمدند، نمنمک باران گرفته بود. او از چند نفر راه سوار شدن به ماشین دودی را پرسید. به او گفتند باید برود داخل ایستگاه جلو سوراخی، گیشه که معمور امنیه و معمور بلیت آنجا ایستاده بودند پول بدهد بلیت بخرد تا راهش بدهند توی سالن انتظار. آنها از زیر باران وارد محوت کوچک ایستگاه شدند. جاوید پولش را توی مشتش آماده کرده بود. مادرش رویش را سفت زیر چادر پاره گرفته بود. جاوید دو تا بیلیت سناری خرید که معمور خودش آنها را همانجا پاره کرد و امنیه به آنها اشاره کرد که وارد اتاق بعدی شوند جاوید بازوی مادرش را گرفت و از قسمت باز دیوار پشت سر معمورین وارد اتاق بعدی شدند. نفس راحتی کشید. همین گذشتن از جلو معمور امنیه و ورود به اتاقهای بزرگ و درهای بسته به او جان تازهی بخشید. احساس کرد که سرانجام تهران را پشت سر گذاشته بودند سفرشان به سوی خانه آغاز شده بود در این اتاق جمعیت زیادی از مردهای قبا پوشیده آخوندهایی با امامه های سیاه و سفید و سبز زنهای چاقچوری و بچه خورده همه منتظر باز شدن درهای بسته سالن بودند یک در بزرگ وسط و دو در کوچک در در دو سمت آن بود داوید مادر و خواهرش را از میان جمعیت آورد جلو، پشت یکی از درهای کوچک سینه دیوار نشاند. خودش هم نشست، حتی در اینجا هم کوشش میکرد، مخفی باشند، کوچک و بی اهمیت باشند و جلوه نکنند. امیدوار بود کسی از خانه ملک آرا آنها را نبیند. هنوز ته دلش از ترس و دلهوره خالی نبود. جمعیت به تدریج زیادتر و شلوغتر میشد در گوشه و کنار سالن گداها بلند بلند دعا و روزه میخواندند در یک گوشه مردی معرکه گرفته بود و پردهی صحرای کربلا باز کرده از مردم چراغ میگرفت در گوشه دیگر یک زن کور آبل رو با لچک و چارقد و با چادری که به دور بدن خود پیچیده بود با صدای کلفت و گرفته روزه میخواند در هوا تکان میداد و از ملت پول می گرفت و مردم مرشد ماده صداش میکردند. کردند. جاوید ساکت نشسته بود و جمعیت را نگاه میکرد کرد که در سالن میان هم میلولیدند، لولیدند. لملمه میزدند داد و قال می کردند. ناگهان فریاد مردم بلند شد که دروا شد، دروا شد و سیل جمعیت روی سر و کله هم ریختند و به جلو حجوم آوردند. چند نفر در واقع روی پا و روی شانه های او و مادرش لگت گذاشتند و از روی آنها رد شدند جاوید به هر ترتیب بود از لای دست و پای مردم بلند شد و مادر و بچه بغلش را هم بلند کرد بازوی او را سفت گرفت به خودش چسباند، کوشید کناری بیستد تا حجوم جمعیت بگذرد اما موج آدم آنها را هم مانند کاغذ پارهی روی سیل آب خروشان با خود برد. از میان در چوبی قلتاند و از گوشه بیرون انداخت. بیرون حالا باران تند و تیزی می ریخت. مردم مثل جانورهای فراری به طرف ماشین دودی می دویدند. جاوید پیکر درازی از آهن و چوب را دید. سیل جمعیت از در بیرون می ریخت و به طرف قطار می تاخت. بیشتر کسانی که با هم بودند، دست یکدیگر را گرفته بودند و میتاختند مردها داد می کشیدند و زنها جیغ می و بچه ها پرت می شدند. جوانها لودگی می کردند و کره میرفتند و همه به طرف ماشین دودی می دویدند. جاوید نفس تازه کرده بود، بازوی مادرش را گرفته بود و آماده بود که به سوی گوشه از قطار برود و زیر باران نجات پیدا کند، که ناگهان دلش ریخت درست جلو در بزرگ باز شده کنار قطار سه نفر را دید که با چوب و چماق پشت به قطار ایستاده بودند و توی جمعیت را نگاه می کردند جستجو می کردند آن سه نفر هنوز او را ندیده بودند اما او راه فراری هم نداشت نمی توانست به درون اتاق ماشین دودی برگردد چون هنوز سیل جمعیت بیرون می ریخت. اگر همراه مادرش از جمعیت جدا می شدند و به انتهای ایستگاه فرار می کردند، بیشک زود دیده می شدند. چند ثانیه ماند که چه کار کنند. جمعیت به آنها تنه می زدند و رد می شدند و جاوید عاقبت تصمیم گرفت بهتر است هر جور شده سوار شوند. شاید موفق شوند گوشهای پنهان شوند. تنها چیزی که در این دنیا نمیخواست این بود که به چنگ آن سه نفر و شلاق و چوب و چماقشان بیفتد. عبو تراب، میرزا اصقرخان و نوکر نوکرباشی. بازوی مادرش را کشید و به سوی انتهای ماشین دودی دوید. اما در همان لحظه حتی در میان جنجال و حیاهوی جمعیت صدای میرزا اصقرخان را شنید که گفت اوناهاشن، اونجا و عبو گفت خودشونن و قلوم علی داد زد وایس این هر لقمه ها پای رکاب قطار آنها سر جاوید و سرورخانم ریختند جمعیت در آن لحظه آنقدر به خودش مشغول بود که متوجه هیچ نبود و چه کسی اهمیت میداد و آنچه که بعد زیران باران گذشت تند و بیچون و چرا مانند فرو آمدن سایه مرگ بود میرزا از عصای چماق مانندش را زیر گلوی جاوید گذاشت و گفت اگه نمیخوای همینجا مادر و این بچه رو بدم زیر چماغ له کنن بی سر و صدا با من برمیگردی. میگردی آقا خودش میخواد به موقع به تو پول بده و با کالسکه برگردونتتون یزد. کالسکه هم همین الان اینجاست راه بیافت راه و چاره دیگری نبود به مادرش نگاه کرد که حالا بی صدا گریه میکرد توی سینهش می زد. گفت، گریه نکن مادر، برمیگردیم صفحه هفته زیر باران نکرهای ملک آرا جاوید و مادرش و بچه کوچک را از ایستگاه بیرون آوردند. آنها را کشان کشان آوردند، توی کالسکه تپاندند. عبو تراب را به سوی گذر و زیر دفتر تاخت. میرزا از و قلوملی عقب کالسکه پهلوی آنها بودند. اولین کتک ها را همانجا توی کالسکه به جاوید زدند. جلو مادرش و دختر کوچک. با همه اینها راه برگشت به نظر جاوید زود و تند تمام شد. چون لاباد مقصش از کار افتاده بود. از چپ و راست توی سر و شکمش میزدند. میرزا از قرخان با عصایش توی سر و صورت یا به قلم پاهای او میزد که این همه دردسر ایجاد کرده بود. عوملی ناکر باشی با یک دست و پاهای خودش را گرفته بود ناله می کرد. با دست دیگر هر وقت دلش میخواست توی شکم جاوید میزد و به او جد و آبادش فوش بد میداد. در باغ باز بود، کالسکی یک راست داخل شد. ابو پرید پایین در بزرگ را بست. میرزا از آنها را با لگت از توی کالسک و حیات زیر باران انداخت. قوملی از در مقابل بیرون آمد و به دستور میرزا از قرخان آنها را به طرف زیرزمین و انباری مطبخ هل داد تا بعد ببینند ملک آرا چه دستوری میداد. بنابراین آن روز، روز به اصطلاح آزادی آنها هنوز ظهر نشده بود که دوباره ته زیر زمین بدبو و سیاه پرد شده بودند و نمیدانستند با آنها چه خواهند کرد. دو سه ساعت گذشت، زمان درازی که برای جاوید تا آن روز بدترین ساعتهای عمرش بود، حتی شاید بدتر از روزی که شنید پدرش را زیر فلک کشته بودند، اوایل بعد از ظهر سر و صدا و بیابروی زیادی توی باغ بلند شد. صدای آدم های زیادی را شنید که می آمدند و می و حرف می زدند و جیغ و داد می کردند. جاوید حتی انگار صدای گریه چند تا زن و صدای جیغ و گریه لیلا و انگار کتک خوردن او را هم شنید. نمیدانست آنجا توی حیات چه می گذارد. باز مدت درازی گذشت. عصر در یک لحظه مثل قررش رد ناگهان صدای فریاد قلوملی بالای پله ها پیچید که آنها همه را صدا کرد بالا بروند. لابد ملک آرا آمده بود. جاوید راز و نیاز و نیایشی با پروردگار خودش کرد. دست مادرش را بچه به بغل گرفت و زیر زمین بالا آمد. برخلاف انتظارش آدم های زیادی در حیات نبودند. فقط قلوملی توی باغ بود. ملک آرا خودش بالای ایوان ایستاده بود دستها به کمر مثل برج زهرمار. میرزا از قرخان هم کنارش ایستاده بود. او گزارش تمام کارهای جاوید و جاسوسی ها و عملیات خودشان را به ملک آرا داده بود. ملک آرا لباس سردار و سالاری رسمی و پرزرق و برقی پوشیده بود. انگار که از مراسم ویجه ای آمده بود یا به مراسم ویجه ای می رفت. لباسش سرتاپا سیاه بود، با نیمتنه و شلوار و چکمه سیاه، با مدال و ملیله و دنگ و فنگ، حتی شمشیر به کمرش داشت. باز برخلاف انتظار جاوید، وقتی ملک آرا حرف زد، مخاطبش جاوید نبود. مخاطب ملک آرا، با خوف و اشمعزازی که به جان جاوید افتاد، مادر جاوید بود. داد زد، پس تو پتیاره پرش کردی که فرار کنه هان؟ سرور خانوم نفهمید، فقط حس کرد با او حرف میزنند. ها؟ بله، چه فرمودی آقا؟ ملکارا داد زد، زبون با کردی ها؟ ها؟ نه ببخشید آقا، ما خطا کردیم، نفهمیدیم، اشتباه کردیم. جاوید داد زد، ما در جلو نرو. تقصیر تو لکاته بود، تو توی گوشش خوندی که فرار کنه، ای سلیته گیس بریده. سرور خانوم داد زد. ببخشید آقا، من اشتباه کردم. شما او را ببخشید، بچه هست. من هم چشم، دیگر خفه خون میگیرم، کنیز شما هستم، جاوید گفت، مادر، ملکارا داد زد، میدم چشمای جفت نکبت پدر سختتون را در بیارن، میدم گوشاتون را ببرن، بذارن کف دستاتون، میدم زبوناتون از بیخ با چاقو ببرن، بندازن جلوی سگ، میدم گیسای تلکاتر رو از ته ببرن، بریزن توی خلا. بعد اون بچه هرومزادت هم با دستای خودم خفه میکنم بعد میگم همون ته زیر زمین چالتون کنن. نگه دارم تا بپوسین. تا شماها خاک بر خائن نباشین که برخلاف دستور من گوهی بخورین. اینها را گفت و آمد جلو سر پله ها. اما چون باران بدی میریخت ایستاد. گفت بیارینشون این بالا. سرور داد زد. ببخش آقا ببخش. ملکها گفت اول پاهای اون پدر سختر رو بزن بشکن که دیگه فرار نکنه، سرور با مویه و زاری توی سر خودش زد، به سوی ملکارا زجه زد، او را ببخش آقا، مثل پدرش نکن، جاوید قدمی به سوی مادرش رفت تا او را بغل گیرد، آرام کند، گفت، مادر، مادر، آرام باش، گریه و زاری نکن، اما سرور خانم بچه کوچکش را گذاشت زمین، تقریبا انداخت زمین و با دستهای گسترده و به هوا بلند شده به سوی پله های ایوان ملک آرا دوید. افسانه توی گل و باران به گریه و شیون بیشتری افتاد. جاوید بچه را دید اما او هم اهمیت نداد. دنبال مادرش دوید. پیراهن سفید بلندش که خیز شده بود به پاهایش می چسبید بد جوری صدا میداد و مانند بالهای شکسته عقابی جلوی حرکت او را میگرفت در آن لحظه شوم احساس میکرد که پایان عمر خودش فرا رسیده است ترجیح میداد هزار بار به پیش مرگ برود تا اینکه اجازه بدهد امروز به مادر او بیحرمتی شود. یا اجازه دهد که آدمهای ملک آرا یا خود ملک آرا انگشتی به سوی مادر او بلند کنند مادر صبر کن سرور زیر باران پایین پله های ملک آرا پایش لغزید، به زمین افتاد و پیشانیش به سنگ پله خورد وقتی جاوید به او رسید او نقش آجرهای حیات بود خون از گوشه پیشانی و از گوشه لبهای نازو که او بیرون میزد و زیر باران شسته میشد. موهای سفید آشفتش از زیر چارقد بیرون زده بود. جاوید زانو زد. مادرش را در آغوش گرفت. او را تکان داد. صدا کرد. اما از لبهای سرورخانم خانم دیگر کلمه بیرون نیامد جز یک آه یا اهورا. در چشمهایش هنوز سایه التماسی بود که داشت میمرد و محف می‌شد. صدای ملک آرا از بالای ایوان بلند شد که به قلومالی دستور داد. گفتم جفت پاهای اون پدر رو هم بزن بشکن تا دیگه حوس فرار به کلش نزنه. قلومالی با چماغ چوب آلبالوش آمد جلو. او لابد نمیدانست که مادر جاوید همکنون در حال مرگ است یا مرده است. ملک آراب و میرزا از هم لابد نمی دانستند. یا شاید می دانستند و اهمیت نمیدادند. جاوید در ضربت و ماتم آنچه که به سر مادرش آمده بود حالا در این دنیا نبود. گرچه بالای سر مادرش زانو زده بود و چهره خونالود او را نگاه می کرد. بالای سر جاوید آمد، چنگ زد، شانه او را گرفت و کشید، تاقباز روی زمین پرت کرد. جاوید زیر باران تندی که توی صورتش می‌خورد سرش را بلند کرد، به صورت و به چشمهای قلوملی نگاه کرد، قلوملی چوب را بلند کرد، با خشم و اقده قریبی به کوبیدن ساقهای پسرک پرداخت، هر ساق پا را بیشتر از ده دوازده بار با چماغ چوب آلبالو کوبید، خون انداخت، زخف کرد و استخانهایش را شکست. زخم و شکستنی که جاوید را تا آخر عمر چلاغ کرد. نوزده صفحه هفتاد وقتی جاوید چشمانش را دوباره باز کرد، در جای ای بود. در اتاق کوچکی بود، بی پنجره، با سقف کوتاه، دیوارهای گچی تیره، مزین به چند تصویر و شمایلهای مذهبی و زمینی که با زیلو پوشیده شده بود، اتاق بوی تریاک میداد در یک گوشه اتاق پیرمردی لاغر و ریش سفید با قبا چسبناک سیاه و شب کلاه چرک سیاه پای منقل چمباته زده بود حقه وافور و انبر توی دستهایش بود تریاک میکشید صدای مچموچ پک زدن پیرمرد توی سوراخ حقه وافور تنها صدای اتاق بود کس دیگری در اتاق نبود جاوید زیر لحاف پارهای بود و نمیتوانست بلند شود. پاهاش را توی کهنه پیچیده بودند، اما حس و توانایی نداشت. پرسید: آقا، من کجا هستم؟ پیرمرد صورتش را از روی منقل بلند نکرد. مچموچ لبهاش ادامه داشت. جاوید دوباره گفت: حضرت آقا. پیرمرد باز جوابی نداد، اما برگشت و با اکراه نگاهی به او انداخت. جاوید باز پرسید، آقا ممکن است بفرمایید من کجا هستم؟ صدای مچمچ خابید و پیرمرگ فقط گفت توی خونه نزحت و دوله. نزحت نوزهت شوهر مرحوم سرگا خانوم دختر شاهزاده ملک آرا. خیلی خوب، حالا فهمیدی کجایی؟ حالا میذاری به کار و زندگیمون برسیم؟ یک لاشه بیجون بودی که خانم گفت ورداشتن اووردنت اینجا بلای جون ما کردن، خانم گفتن همینجا نگرت دارم تا حالت جا بیاد. بنده هم کربلایی هاشمم، نوکر و باقبون سرعی خانم. پس بگیر بخواب، حرفم نزن، بذار به کارمون برسیم. صدای موچموچ نفس کشیدن از حقه وافور ادامه یافت. جاوید روی آرنج دستش نیمخیز شد. از لای در فسقلی اتاق درخت های باغ را نزدیک می دید. اتاقک انگار گوشه باغ بود. پرسید مادر و خواهر من کجا هستند پس از مدتی پیره مرد سرش را برگرداند با اخم و بی‌حوصلگی گفت تصادف بوده قضا و بلا بوده گذشته والدت مرحوم شد دیروز بردن چالش کردند خدا بیامرزدش چی همین که گفتم آبجی کوچولوت را هم پیش نوکرهای خودشون گذاشتند جاوید سرش را روی زمین گذاشت، دستهاش را محکم توی سرش زد، بعد کف دستهاش را روی چهرهش چسباند، رویش را پوشاند، گریه کرد، راستی موج درد و بدبختی را احساس کرد که زیر پیشانیش خزید. مدت زیادی گریه کرد تا دوباره توانست مغزش را به کار بیندازد. شنیده بود که روزگاری زمین پر از درندگان و خزندگان بدشگون و سیاه دل بود. و شنیده بود که یک روز دنیا از نیروهای دروغ و ناپاکی اهریمن تیره می شود اما نه تا این حد مانند امروز و نه برای او نه برای دنیای تنهای او امشب همه دردها و تیرگی های جهان به دلش بود امشب احساس می کرد هرچه که از سیاهی و زشتی روسپی ابلیس این جهان برای او گفته بودند و او را از آن هشدار داده بودند برای او پیش آمده بود. اهریمن راست بود همانطور که پیش از این خیال میکرد دنیای اهورایی پاک راست بود. اشکهایش را پاک کرد نفس بلندی کشید پرسید مادر من را کجا خاک کردند؟ کربلایی هاشم جوابی نداد. آقا امروز چند روز است که من اینجا هستم؟ کربلایی هاشم جوابش را نداد. داد زد: آقا دلش می‌خواست بلند شود و حقه وافور را بگیرد توی کله پیرمرد خرد کند، اما پا و توانایی نداشت. کربلایی هاشم جوابش را نداد. فقط صدای موچموچ موچ هوا از توی حقه وافور می‌آمد. و بعد فوت دراز دود. جاوید با صدای نرمتری گفت آقا ممکنه زحمت بکشید دست کم خواهرم را بیاورید اینجا. کربلای هاشم جوابش را نداد. آقا کربلای هاشم گفت لا اله الا الله ده خفه خون بگیر. بابا بذار به کار و زندگیمون برسیم. ده بخاب ده. بخاب تا بلند نشدم بگم قلوم علی بیاد یه متکا بذاره روی دهنت رود بشینه تا خفه خون بگیری. ساکت شد و ساکت ماند و روز با تلخی و عبوسی گذشت. کوفتگی و زف دوباره او را به خواب برد. وقتی دوباره بیدار شد شب بود. که بلای حاشم سر نماز ایستاده بود و صدای بلند و قلیزش توی اتاق فسقلی پیچیده بود. جاوید روی آرنجش نیمخیز شد و مدت درازی نماز پیرمرد ویزه را تماشا کرد. وقتی نماز پیر تمام شد، برگست به پسرک نگاه کرد. بعد از نماز، کربلای هاشم حالا انگار اندکی دل رحم شده بود. جواب سلام او را داد و به او گفت بلند شود بنشیند شامی را که برایش از آشفست خانه خانم آورده بودند، بخورد. به او گفت باید خدا را دعا کند و شکر کند. جاوید از او تشکر کرد. بعد از او خواهش کرد که به وی کمک کند بلندش کند تا چند لحظه بیرون برود. پیرمرد ریش سفید ریزه از این حرف خوشش نیامد و دیگر به او اعتنا نکرد. داوید خودش کوشش کرد بلند شود اما به زودی متوجه شد که نمی‌تواند بلند شود به ایستد چه برسد به آنکه که حرکت کند راه برود. در ساقهای پاهایش جز درد حس و رمقی وجود نداشت سایر جاهای پایینتنهاش هم یک پارچه درد بود نمیدانست زیر کهن پاره هایی که روی پاهایش بسته بودند چه به روز پاهایش آمده است و اهمیت هم نمیداد فقط میدانست نمیتواند بایستد و راه برود روی چهار دست و پا به هر رنجی بود آمد جلو از اتاق فسقلی آمد توی حیات نگاه کرد، سرش را بلند کرد، شب سرد بود، سوز می آمد. اما آسمان صاف و پر تاره بود. حیات خانه سرعی خانم کوچکتر از باغ ملک آرا بود، اما فرم ساختمان ها به همان شکل بود. طرف حیات اتاق و ساختمان بود، ساختمان روبه قبله بزرگتر از دو طرف دیگر، زیر تمام ساختمانها، ها، دهنه های مانند ها دهان های سیاه مردگان، باز و زلمانی بود. این خانه ای بود که از این به بعد او باید در آن می مند. برای مدتی نامعلوم و با وضعی نامعلوم زمینگی رو بیچاره. در دخمه ته مطبخ زیرزمین ملک آرا دست کم امیدی داشت. مادرش زنده بود، خواهرش کنارش بود. امشب، تاریکی و خالی بودن باغ مانند کوه مرگ روی سیناش سنگینی میکرد. فقط در یکی از اتاق های ساختمان روبه قبله روشنی کوچکی بود لابد آنجا اتاق سریا خانم بود لابد بیدار بود شاید نشسته بود کتاب میخواند شاید با بچهاش بازی میکرد. جاوید فکر کرد لیلا کجاست و فکر افسانه بود با آه و خشم سرش را تکان داد. چقدر دلش میخواست افسانه پیش خودش بود چقدر دلش میخواست میتوانست از این محله بیرون میرفت از این دام بد بیرون میرفت اما در تاریکی حیات به خودش نگاه کرد با کدام پا ملک آرا به مرادش رسیده بود جفت قلم پاهای او را بشکنید تا دیگر حوس فرار به کلش نزند؟ با این پاها او جای دوری نمیرفت پس از استفاده از مستراح کوچک بغل اتاق کبلایی هاشم به هر رنج و خاری و پس از شست لب حوز و نیایش به اتاق برگشت. کبلایی هاشم گوشه اتاق نشسته چرت میزد خور را پف می کرد. وقتی او را دید سرش را بلند کرد. لعنتی فرستاد فوشی هم به باد کهنه ای که توی گلو و سینه خودش میپیچید داد. باز سرش را به دیوار گذاشت و به خواب خر فرو رفت. جاوید لقمه ای از غذا در دهانش گذاشت، اما بی میل بود. آن را کنار گذاشت و زیر لحاف پاره دراز کشید. لحاف را روی صورتش کشید. صدای خر و پوف کربلایی پیر تمام شب بلند بود. میان درد و عذاب پاهای خودش و خورناس کربلایی هاشم جاوید تمام شب به زندگی خودش فکر کرد حالا باید چه کار می کرد؟ باید از این پس با خودش و با زندگیش چه می کرد پانزده ساله بود در این شهر بد اسیر بود سوگ مرگ و فاجعه پدر و مادرش از یک سو روحش را شکنجه میداد. خواهر کوچکش از سوی دیگری در گروگان بود خودش در دست مردی گرفتار بود که او را تباه کرده بود افلیج و زمینگیر بود و هیچ کاری از دستش بر نمی آمد این تنها شبی بود که در عمرش به حال خودش گریه کرد و با اهورامزده با خدایی که می دید او را رها کرده و فراموش کرده است حرف زد چرا من مگر من چه کردم و چرا تا این حد ای پروردگار ای اهورامزده بزرگ هر که هستی این چجور آزمایش و امتحان است که باید بدهم پدر و مادرم چرا؟ اشو زرتشت اشو زرتشت پس مهر و نیکی تو کجاست، داوری تو کجاست، مگر من با پاکی و راستی و درستی پیش نیامدم، مگر دل من از مهر تو، روان من از نور پاک آین تو، و مغز من از خرد تو پر نبود، چه کار زشتی از من سرزد، با بدی کردم، به که دروغ گفتم، کجا بی اندیشه رفتم؟ چرا باید از همان فردای روز صدرپوشان در این بدبختی بزرگ بیفتم و هر ساعت بیشتر فرو بروم نیاکان من که در آسمان به من هستند چه شدند ای پروردگار بزرگ چرا همه مرا ول کردند گناه پدرم چه بود گناه مادر بیچارم چه بود گناه افسانه کوچولو چیست تمام شب گریه کرد چون اکنون احساس میکرد ایمانش هم دست خوش تردید و سستی شده است و این احساس او را می سوزند. نه تنها آدمهای های بی ایمان و بدکار او را با پلیدی، تیر دلی و نادانی زخم زده بودند بلکه احساس میکرد از درون خودش نیز زخم می خورد. احساس می کرد کیش و ایمان مقدسی که او تمام عمر کوتاهش آن را پرستیده و به آن مهر ورزیده بود در او به تیرگی و چرکی می رفت. تمام شب گریه کرد و خورناس گلوی وافور زده کربلایی هاشم در اتاقک فسقلی زبان کشید بیست صفحه هشتاد و, چهار و روزهای بعد که گذشت جاوید بیشتر در یعص و در فکر بیهودگی زندگی خودش فرو رفت. شب می و روز می آمد و باز شب می و او مانند جانوری زخم خورده و از پا افتاده زیر یک لحاف پاره دراز بود. یا تنها گوشه اتاق افتاده بود و تنها کارش تماشا کردن کربلای هاشم بود که نماز میخواند میخورد وافور میکشید و می بید و خورپاف و, و خورناز ول میکرد. در یکی از روزهای اول، یک روز صبح صرایخ خانم وقتی داشت از خانه بیرون میرفت، چند لحظه ای آمد در اتاقک به او سر زد و با او اندکی مهربانی کرد. دختر بیوه ملک آرا چادر جورجت بژرنگی پوشیده بود با کفش‌های سیاه بسیار شیک. دختر سه سالش هما هم با او بود اما از لیلا اثری نبود در حقیقت جاوید بعد از روز کذایی فراد و دستگیر شدن و بازگشت داده شدن خودشان به خانه ملک آرا آن روز که صدای گریه لیلا را از توی حیات شنید تا امروز دیگر هرگز لیلا را ندیده بود سرایه خانم آمد در اتاقک گوشه باغ را باز کرد و احوال جاوید را پرسید جاوید تنها بود با خجالت از آن خانم تشکر کرد سرش را انداخت پایین بعد بلند کرد و گفت که از مهر و نیکی آن خانم زنده است ثریا خانم امروز رویش بیرون بود و جاوید امروز برای نخستین بار تمام صورت و مقداری از موهای خرمایی روشن او را میدید میدید که او هنوز زنی زیبا و جوان است گرچه اندوهگین و وارفته و دارای بدنی چاق و پف کرده جاوید پس از احوال پرسی سریا خانم تنها خواهش خود